السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الخلق باص الرزق خالق الإشباح والجلال والكرم والطول والإنعام. اللهم صل على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد <تصفيق> وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الصيام على بقية الله في الأراضي. اللهم کل وليك الحجت من الحسن صلواتك عليه و على في بيها در وفي و كل ساعة ولي جمها فرا مقايد مناسره و معينا حتى تسكنه ارض كطع و تمام آهوا فيها موسی کم اراد الله و نفسی به تقوى الله و من ینتق الله یجالله مخرجا و یارزقه من حیفودا یحتفید ایام عزاداری حضرت سیر الشهدا راب به شما عزیزه و همهی به محضر حضرت بقیت الله حسبیات عاش می کنیم خداوند ارتباط ما را با اهل البیت روز به روز قوی تر بگرداند سخنی که در این خدمت شما عرض می کنم مساله دشمن شناسی است یکی از مسائل بسیار مهم این مسئله است نهزت ها قیام ها اگر دشمن رو بشناسند می جلو خطر رو بگیرند وگرنه نه نه خود ماها در زندگی فردیمون و همین طور اجتماعی اگر دشمن رو بشناسیم مراقب می اگر نشناسیم چه میافتیم به دام شیطان میافتیم مقتبدی جریان چین دشمن دونو هست گاهی آشکارا روشن است که دشمن است گاهی است که دشمن مخفی است خود رو تنهاان چردید دشمن قبیح ماست اما ممکنه به ظاهر دره دوستی هم با ما بیاب این دشمن مخفی از دشمن آشکار خطرناک تر است و مسئله نفاق هم همین است این که نفاق و منافق برای امت اسلامی خطر بزرگ است و قرآن میفرماید همولاد و بفهدر هم دشمن واقعی شما اینها هستند مراقب باشید یا میفرماید فرماید المنافقین که در کل من النار در درکات زیرین جهنم جای منافقین است از همه جاشون بدتره برای اینکه خطر منافق بیشتر است از دشمن ظاهر شیطان هم خطری که برای ما دارد همین است خسر رو به ما نشون نمی تا ما جلا خودمان خودمون رو از بقوع در خطر بگیریم نه تعبیر قرآن اینه می که قلعود و به رب ناس امده که ناس اله شیطان دو سفت دارد یکی وسباس یکی خناس ایجاد وسواس می کند در انسان فکرهای غلط رو به نقض آدمی میافتند. اما فورا خودشو پنهان می کند که آدمی نمی چی بود؟ این چی بود که این فکر رو به مغز من انداخت شیطان بود خودش پنهان شد این هم خطر از شیطان همینه چی گناه رو در نظر انسان زیبا جلوه میدهد؟ خودش که دشمن بسیار خطرناکی هست خودش رو دوست معذفی میکند. وقتی همچه آدم محبار و, و خاص گول بزند گفته من ناسه هم دست شما هستم و به شما میگویم که مصرفات شما در این ناس کاری می بیند بخورید راه به کمان ناسه هن و به لحظه آدم رو هم آدم محبار رو هم گول داد در هر نهضتی هنر رهبر نهزت این است که دشمنان مخفی رو مجموعه نشون میدهند و مؤذفی میکنند. رهبر میگوید این خطر شما رو تهدید می کند. دیدار باشید به باشید. دشمن اینجا این توطعه رو دارد مراقب باشید. این خونه رهبری. حضرت سید و شهده نهرت آشورا اصلا بر همین اساس بود که دشمن مخفی را امام حسین آشکار کرد یزید دشمن اسلام بود دشمن مسلمین بود اما این چهره دشمنی رو نشون نمیداد همه میگفتند گفتن خب ما از دنیا رفته جدید جاش اومده نماز نه خونه روز میگیره قرآن میخونه مکه میره اوله حجیه فلان کمک به فقرا میکنه و نشون میکنه خب پس آدم خوبیه چرا باش بگیم فضای مدینه و فضای مکه قبل از نهضت آشورا یک فضای امنی بود با فکر راحت همه نماز خونی خوندن می در امری خلافت هم مشکلی نداریم که دیدم آدم عادی نیست بالاخره. اونم مسلمان نماز میخونه روزه میگیره اینطور چون نشناختن یزید رو اینجوری بود غذای مکه و مدینه حرکت امام حسین در کربلا آمد این چهره رو نمایان کرد مردم فهمیدن یزید چی هست و یدید چی هست چه جنایت کاری هست که ما نمی دونستیم چه خوندیزی هست چه زادمی هست چه چی هست مهزت آشورا آمد یدید را آشگار چند لذا بعد از مهزت آشورا شما میبینید وقعی حضرتش میاد مردم مدینه یک پارچه علیه یادین میشورن ولی اونشه در این وقت یزید بالاخره اینها رو با خوندیزی فرابانش ساکت میکنه ولی باز در مکه این فریاد بلند میشه و نهایتا وقتی مردم یزید و یزیدیان رو و دودمان بنی اومیا رو شناختن کار به اونجا می رسد چه یدید ناغود می شه بنی هم سخوت می کنه این هنر امام حسین بود و مسئله اصارت هم چه در همین روزها بعد از آشورا اتفاق افتاد اعظامت اصارت هم در همین بود کاروان اصرا در سفر اصارت خودشون چهره یزید رو و پسر زیاد رو و همراهان اونها رو خوب به نظم فهمندند و نشون دادند تا در دا نهایت حضرت زهین العابلین در اون سخنرانی در مسجد اومبی دیگه سیرخلاص رو رد و مردم که خوب بیدار شدن و دیگه کسی نبود که یزید رو لعنت نکند مکار به اونجا کشید که یدید به ازخاهی پرداخت در مقام ازخاهی بر آمد آقا هر حاجتی دارید بفرمان میخواید باشید محترمانه در شام بمانید بعد برگردید محترمانه برگردید از این باجه ها شروع کرد یعنی فهمید که دیگه در پیش مردم جایگاه نداره چین امرو برای مردم روشن شنچد نهزت آشورا مسطفر اثارت بیت. علیه و, السلام. و این طبیعی هم هست مردم خداوند انسان ها رو بر فترت توحید آفریده بر فترت پاچ آفریده کل مولودین یولد و علال فتره اقیم وجهکا به دین حنیفان فترت الله لطیه و ها هر انسانی از آدم دوز بدش میاد یه نفر رو نمیتونید تیدا کنید که از آدم دوست خوشش بیاد آدمی که به به مال مردم دست درازه میکنه چفابال میکنه غارت میکنه مردم دوست بدارن امتال نداره مردم به حشم کترت از آدمهای قاتل کشنده ظالم خونریز بدشون میاد تاغوت ها همچی میخوان خونبریزن نمیگن ما قاتلیم فرعون هم وقتی میخواد با مردمش حرف بزنه میگه انی اخافان یبدل بینکم او ان یظهر فی الارض من میفرسم مصاد دین شما رو تغییر دهد و و فساد راه بیاندازد فرعون هم ادعا میکنه من دنبال اصلاح هستم امام حسین هم می‌فرمایند من هم دنبال اصلاح هستم حالا کنم نش از این دو ماهیتشون سخنشون جا نیفت اونهایی که دشمن رو نشون میدن جماعیات دشمن رو نشون میدن مردم رو از این دشمن متنفده رو بیزار میکنن عبارات عجیبی در زیارات خیلی باید روی این چلمات دقیق کرد چون بعد کمه من فقط گذارا چلمات رو میگویم بکم یو بجن الله الكبد و بکم یو الله الزمان الكبد ای علمه محصومی ای سید و این قیام شما نهضت شما حرکت شما موجب شد که دروغ ها روشن بشه دروغ دو بشه بکم یو بجن الله الكبد کم یا الله کلید و این نهدست شما و برنامه های شما به مردم درس میدهد چطور از ذت و خاری خودشونو نجات بدن و عزیز بشن آقا بشن تا آخر پس این یه مسئله یه اشاره هم در اینجا میخوام بکنم به روح نهزت امام حسین با اون عبارت هست از امر به بمعروف برادران و خواهران قیام امام حسین یعنی امر به معروف و نه یه از منکر خودش برمود اونی ده ان آمارا بمعروف و انها انز منکر من سؤال میکنم در جامعه ما آیا این امر به معروف و نهی از منکر چجوری هست وقتش ما چه میکنیم در مقابل منکر ما ساکتیم خدایی مچرده راضی هستیم که اگر راضی باشیم در اون گناه صحیمیم از از هم باشیم بلی بتوانیم کاری کنیم منکر رو چم کنیم یا بشه چند کنیم و نکنیم ما در قیامت چنار اون کسی که منکر رو انجام میده اونجا در جهنم جامونه امام حسین پرمود اگر چسی ببیند که تمگری مسلطه بر مردم شده حلال ها رو حرام می کند، حرام ها رو حلال می کند، بیکل مال را قارچ می کند، شرین و شنان، و اقدامی نکند، می تواند تغییری بدهد و ندهد، کانه کانال الله می و مدخله، این در قیامت جای همه ستم جهان رود در جهنم هست. برادران خواهران، در سوزان این خلاف. مسئولین شما رو مردم مسئولین رأی دادن که شما این نظام رو حفظ کنید نظام جمهوری رو حفظ کنید آیا حافظ هستید یا نه امیر المؤمنین که در بستر شهادت می اگر امر به معروف و نهیت منتر رو ترس کردید بدان مسلط میشن و علیکم اشرار رو کن شما تدعون فلای و سجاب لکن بعدها مسلط میشن یعنی حکومت دینی از دست میره حکومت اولیاء خدا از دست میره حکومت ولی جه از دست میره این قلاب از دست میره با چی از دست میره با تر کمره به نعروف و احیزمان کر تمام خوبی ها تمام ارزش ها رو یک یا جمع کنید بذارید در مقابل امره به معروف و نحیزمان کر جایگاه این خوبی ها چی هست؟ روایت مختبر است که می نسبت تمام این خوبی ها به عمر به معروف و نهی از منتر مانند نسبت یک قطره است بر نسبت به عمیق کبیر حواس من جمع باشه چیز رو رو نزدست چیز رو را ها کردیم نمایندگان در دوره خ طرحی در رابطه ای با امر به معروف اگر منشب به مجلس دادند، تصویب شد. شورای نگهبان تایید کرد ابلاغ شد. ننیدانند چقدر این برنامه که بسیار برنامه ارزنده است. بسیار قانون مطقن و قدبیگی است چقدر توانسته عملی شود. چقدر اونها که میباد همکاری بکنند همکاری کردند یا میکنند مسئله ساده نیست اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه عملی نشود بیدونیست تردوش چی میشه کمچند عمر به منکر میشه نه از معروف میشه و بالاتر چمچم معروف منچر میشه منچر معروف میشه یعنی گناه اون کسی که گناه میکنه میپسندن اون کسی که گناه نمیکنه نه بین بیمهری جامعه هست همون روایت مقصدی که پیغمبر اترام به سلمان فرمود هیچ فکر کدید چرا آمار طلاق بالا آمده است علتش معلومه چی هست من نمیتونم در اینجا سریح سخن بگویم اما اجمالاً بگویم جوانی که ازدواج کرده ما تشویق می‌کنیم ازدواج کنید ازدواج کرده اما صبح از خانه بیرون میاد سحنه های را میبیند دختران و زنانی را میبیند که وقتی به خانه بر میگردد نسبت به همسرش اش کمتر می شود. من بیشتر یه توضیح نمیدن وقتی فساد آرمگیر شد مسیحه همین میشه رحبت اون که در درون خانه این غریزه اشباع شود در بیرون اشباع صورت میگیرد بی خود نیست که میفرماد نگاه تیری از تیرهای شیطانه بی خود نیست که میفرماد زنای چشم نگاه هست زنهای مچین نجیب متدگین با وقار با شخصیت روی این جمله فکر کنید مخصوم می فرماد اونی که نگاه بهت می کنه حکم نگاه اینه زنای چشم نگاهه خودتو بپوشن هم بر جوان رحم کن هم بر جامعه رحم کن هم بر خودت رحم کن که شلاق زنا در قیامت به تو فضای مجازی چه کرده و می کند انترنت چه غوغا نمیدونم مسئولین ما میتونن کاری بکنن یا نه من نمیگم ببندید نه چون فوایدی داره اما قرآن میگوید یا سلونکان خمر والمیسر قل پیه ما افمون کبیر و منافع الناس حیغمبر عزیز از پراجعه به چرا با قمار سوال میکنن میگویم که چه بکنیم بهشون بگو بله منافعی دارید شما شراب تحیمی کنید شراب رو می مغازه رو به اجاره میدید. از این طریق درامت هایی دارید بله این هست اما بدانید که زردش از نقش بیشتره اسمه هما اکبر من نقشه ما عزیزان مسئولین مسئولین فضای مجازی بنشینید باز من تکرار میکنم نمیدم ببندید نه میگم سعی کنید که زردی که متوجه میشه از این ناهیه به جوانان و نوجوانان جلوه به رو بگیرید زرد کم نیست خطرناکه داد همه بلنده داستان داستان محترم کل کشور در مشاهده شنیدید چی میفرد بود بازم تماشا کنیم منتظر عذاب باید باشیم منتظر باشیم که ایران اون درست دوبان بشود خدا این بکت دارم در این اجام دیگه اشترا آماده میشن از کوفه درن شام باز موسیقی قضیم بر قلب مقدس امام زمان وارد میشه در بین کوفه و شام سحنه های زیادی است اون صحنه آخرش بود که وقتی سر متحره امام حسین دوون سفیر روم دید و بالاخره پرسید و فهمید سر چیه نتونست به یه طاقت بیاره گفتید این سر پسر دکتر پیغمبر تویه اینجور عمد میکنی یعنی این سر بریده هم داره معمولیت داره داره تکون میده داره کافر رو مسلمان میکنه این معدم شهادتین رو گفت مسلمان شده در بین کوفه و شام دیر راهب رو داریم در بین کوفه و شام مشهد و رو داریم هر کدامی از اینها شرح مفصل داره یکی از ارادتمندان حضرت زین العابدین در مدینه مدتها ها باز این العابدین معنوس بود بعدا دیگه از مدینه خارج شد سالها برو گذشت که دیگه امام رو ندید میگوید در یکی از شهرهای بین کوفه و شام کاری داشتم وارد شهر شدم دیدم اصلا شهر عجیب عبد شده و از همه خوشحالن، همه مسرورن، همه میخندن، همه چهت میزنن گفتم چه خبره؟ آخر اون زمان که مثل حالا نبود یه خبری سریع منتشر بیشده همه جواب درسته به من گفتم که یک نفر بر یزید خروج کرده، یزید غالب شده او و یارانش رو کشته، اهل بیتش رو اسیل کرده و ناس بچه ها رو دخترها رو رو بیارن این شهر میگه از شهر آمدم بیرون دیدم قوغاست مردم دیستن همه آمادن منتظرن که ببینن این سحله دلخراش شد میگه منم توی جمعیت بودم یه بقتیدم هل هل شد دیدم بعده لده ای رو آوردن زنهای بالای شسران راه رو باز کرده بودن و راجع اونها من هم سعی شدم درمون جلوب جمعیت سفر اول اینها رو از نزدیک ببینم اما رفتم نگاهی شدم زنها رو نشناختم نفه بیرم از اینها چی هستند؟ می دنبال زنها البته این جمله رو هم بگویم گفت این زنها که می آمدن در بین زنها سرهایی رو بالای نیزه ها زده بودن من نگاه کردم از دور بین سرهایی چی نشنفتم نفهمیدم چی هستن این ها چی ایکی نکرده بعد از زنها می دیدم که یک جوانی بر بالای شطوریست و حالا میتونم برم نزدیک او رو ببینم میگرستم نزدیک آمدم جلو نگاهی کردم تو صورتش، به نظرم آمد چون این آقا رو دیدم حالا این کسیس از ارادتمندان زینال آبدین هست سالها در مدینه گفت یه خد بیردتم جروتر بیشتر خیره شدم به صورت آقا گفتم حتما من اینشون رو دیدم اما کجا دیدم نمیدونم برای شما اتفاق افتاده گاهی کسی رو میبینید اما میگید آه شما کجا دیدم میدونید این رو دیده زیادم دیده اما تطبیق نمیکنه الان یکی دو سه بار این عمل تکرار شد یه وقتی خوب نزدیک شد خیره شد به شهره زین العابدین گفت آقا شما زین العابدین هستید حضرت نگاهی بش کردن ترمدن بله من زین العابدین خب به چه ناسدن چرا قول بگردن شما چرا زنجیر به که شماست شما کجا اثارت کجا چی شده خاص فریاد بزنه آقا فرمودن در خودتو به کشتن نده هیچی نگو ساکت باش آرام از کد آقا فرمایی چی کاری چیزی دارید من انجام بدم فرمود اون نیزهی که میبینی به دست اون نیزه دار هست بالای اون نیزه سر بریده پدر من است. هست این سر در بین زنها قرار گرفته. مردم که میخوان سر رو ببینند همراه با دیدن سر اماهای منم میبینن خواهرای منم میبینن اگر میتونی یه پولی چیزی داری برو به این نیزدار بده چی سر رو از بین زنها عقب ببری این قدر نامهرم ها به حرم تیغان نگاه نکنن میگردتم من امر کردم او هم پولها رو گرفت از بین زنها بیرون رفت برگشتم گفتم آقا امرتان امتصال شد مطرد دیگری امر دیگری دارید بفرمایید میگه دیدم آقا سر مبارک شما آوردن تا این فرمودن این زنجیر که به گردن من انداخته شده در طول این سفر آفتاب به این زنجیر تابیده داخت شده کردن من اون کرده اگر داری یه پارچه ای زیر این زنجیر بگذار دفتم چشم آقا دست کردم من مامه مبرد داشتم تکی کاری کردم میگه آقا سر رو که من زنجیر رو که خواستم بلند کنم ا پارچه رو دیره سنجیر بکورم دیدم قطرات خون از گردن آقا جادی سالالله علیکم یا احد بیت النبی به ماود آفده شد اسم الله الرحمن الرحیم اسم الله الرحمن الرحیم الله الله واحد الله تشرماد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم كفوا من أحد صدق الله عنه. والحمد لله الذي يجيبني حين أناديها ويصفر علي كل عورة بعنا أعصيها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك ومشفيك وصل على علي عمير المؤمنين وغسي رسول رب العالمين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين أصلي على سبقي الرحمة وإمامي الهدو والحسن بالحساين سيدي شباب أهل الجنة أصلي على آئمة المسلمين علي بن حساين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وقاف الصابح الهجة القائم. مع سر وقت حل ملدن در خط ای دومش الب خطبه اولی قدی طولانی شد سعی میکنم فوتوی ای دو بانک کوتاه باشه یکی دو جمله با آقای اوبا ماش صحبت داریم. و یکی دو جمله هم با در رابطه با اقلیم كردستان عراق. <تصفيق> قبمان سلام بله. بل در ابتدای دولت خودش پیشنهاد مذاكره با ایران رو داد تا به زعم خودش مشکلات فیمابین حل شود عده ساده لح هم سخنان او رو باور کردند. اما با روشنگری مقام معظم رهبری دروغ وی روشن شد معلوم شد که این دوست نیست این دست دست چودنیست که پوشش مخملی دارد اوباما همزمان با اید به ایرانیان ایران رو به طرفداری از تروریسم و ساخت استلاح هستهی متهم شد بلاختار مزاکراس منجر به برجام شد اندک اندک پوشش محمدی کنار رفت و با روی کار آمدن ترانت دست شدنی نمایان گشت سخنان سرشار از وقاحت و بیشرمی ترانت در سازمان ملل متحد چهره واقعی امریکا را به دنیا نشان داد و عمق دشمنی های مخفی شیطان بزرگ را دشمنی های مخفی و عمق دشمنی های مخفی شیطان بزرگ را به خوبی نمایان ساخت بت آمریکا هیچگاه با نظام اسلامی ایران سر سازگاری نداشته و پیوسته در مقام زردزدان زدن و دشمنی بوده است های بیدریق از شاه و از حرکات تجزیه طلبانه و كودتا و حمایت از صدام و حمله به هواپیماهای بری و تحریم های ظالمانه تنها بخش کوچکی از دشمنی آمریکاست چه از حافظه تاریخی مردم پاک نمی امید است مسئولان کشور با عبرت گرفتن اینو دقت کنید امید است مسئولان کشور با این از این تجربیات تلخ تاریخی و استفاده از های داخلی همچون گذشته در برابر زورگویی‌های جدید دولت مستکبر آمریکا محکم و استوار بیفتند اما مساله اقلیم کردستان عراق امیدواریم آقای مسئول بارزانی از دولت مرکزی تمکین کند و دست از جدایی طلبی بردارد و برای اسرائیل جای جایتهایی در منطقه باز نکند که متاسفانه نشانه هایی از این خطر مشاهده می شود آقای بارزانی باید به جهت این افراندون توبه سیاسی کند و از مردم عراق جدا عذرخواهی خواهی نماید و با و به با با با با با با آغوش امت اسلامی برگردد و به جای جدایی طلبی به عزت و اتحاد ملت عراق بیان بشد دشمن نیز بداند که ایجا که امید ایجاد خاورمیانه جدید را به گور خواهد برد می دانم یاد مرحوم جلال طالبانی را گرامی بدارم که پیوسته در فکر استقلال کشور عراق و عزت و عظمت ملت عراق کرد و عرب بود مطلب دیگر چند جمله راجع به عزیزانی که اینک در مدارس باز شده و مشغور تحصیلند به اولیهاشون به معلمان چند تذکر میدم آقایان علما، معلمین، اساتید، گاهی انسان فرصتی تلاعی دستشون یاده که میتواند بهترین و بالاترین و ارزشمندترین خدمت رو انجام دهد الان این فرصت دست شما معلمان است شما اساتید است بین خودتون به انقلاب و فرزندان این کشور ادا کنید مغزهای دانش آموزان پربهاترین امانات الهی است چیزی کمی نیست این مغزه ها رو خدا در خیار شما قرار داده باید این مغزه پر شده از محنویت و فضاقل اخلاق و البته از علم و دانش امانتی که حقیقت دین اداع امانت است اصلا قرآن می که نا ارزنا الامانه امانه حلستان و باطه والعرض دقیقی میخواد بگوید پیغمبر رو پرشتادن بفرماد این است که به مردم دادیم اداع امانت یعنی دین امانت اصاره دین است در زیارت رسول اکرم میگویم اشهد و قد بلغت رسالات را بک و نصحتر امتک و عدیت الامانه این فضیلت بزرگ رسول خداست چه اداع امانت کرده همان امانت امانت همان است که وقت عبور از سرات حیبسته از آن سؤال می شود مرتب اینها مسئولان فردای کشورند این عزیزان این نوجوانان این دانش آموزان این دانشجویان و بزرگ خانواده های خود هستند باید معارف دینی و قرآنی به عمق مغزهای آنها درک و اگر اندکی از تربیت معنوی آنها غفلت شود معلمان در تمام گناهان معدول سوء تربیت تا قیامت سهیمند و مکتوب ما قدمو و آثاره شهادت مرحوم آیت الله عشقی ثانی را در این سال جد به علماء حوضه های علمیه بیت محترمشان فرزندانشون تصیت از مینواجمه و از درگاه ای زدی برای اون شهید والا مقام و درجات به هشه با اهل البيت را مسئلت مین ما بسم الله الرحمن الرحیم قل <تصفح> هو والله احد الله صمد لم یلید ولم یولد ولم یکله کسودا احد بسم کل اعدم یا الله یا الله یا الله یا رباه یا سیداه یا غایت رو فرماندار اذن محمد و اذن محمد ما را در زمره انصار دین قرار بده دشمنان دین را نابود بگردان امپیکایم اسرائیل و عربستان سعودی و یارانشون را محکوم به نابودی بثار بردگار روح متحر امام با سجده و شهدان محشور بگردان رحبتر <محن> معظم انقلاب طول عمر سلامتی کامل انایت بخرمان دستمون در دا از زامن در دنیا و آخرت جدا مخرمان نیارت مواقع متحرشون را در دنیا و شقاعتشون را در آخرت نصیب ما بگردان بیماران من داشته ها انایت بخرمان. السلام عليكم و رحمت الله و